درود بر دوستان عزیز و یاران همراه امیدوارم که روز روزگار بر وفق مرادتون باشه و امشب ما رو با بخش دیگه از قصه پسران فریدون از شاهنامه فردوسی همراهی کنید در قسمت قبلی به اینجا رسیدیم که سلم و تور نامه ای تند و تهدیدآمیز به پدرشون فرستادند که تو در موقع تقسیم سرزمینت به ما اجهاف کردی و بخش خوب و بهترین بخش سرزمینت که همون ایران زمین خودمون باشه رو به ایرج دادی در حالی که ما هر دو شایسته تر از ایرجیم برای این کار حالا اگر از تصمیم گذشت برگردی و ایران رو به ما بدی که هیچ ما ستا برادر در صلح و صفا زندگی خواهیم کرد در غیر این صورت ما با لشگری بزرگ به سمت ایران حمله می کنیم و اون رو به زور به دست میاریم فریدون از این مسئله خیلی ناراحت شد اما منوچر که قلبی مهربان و روحی بزرگ داشت گفت پدر در مسئله نیست که شما خودتون ناراحت کنید و من اصلا در فکر مال دنیا و نمیدونم سلطنت و این چیزها نیستم اجازه بدید که من به دیدار دو برادرم برم و شاید بتونم با زبون خوش و با حرف زدن اونها رو راضی کنم که دست از این تصمیم غیر بردارند و ماجرا به خیر و خوشی تموم شد فریدون که میدونست ذات اون دو تا پسر ذات پاکی نیست اولش مخالفت کرد اما در نهایت با تصمیم ایرج موافقت کرد ادامه داستان رو از سفر ایرج به مرزهای ایران زمین جایی که سلم و تور و در اونجا اردو زده بودند ادامه میدیم با ما همراه باشید روز بعد با طلوع اولین شعله‌های خورشید ایرج به خوابگاه پدرش میره و بعد از خداحافظی با اون به همراه چند تن از سپاهیانش راهی مرزهای ایران میشه. سلموتور موقعی که خبر اومدن ایرج رو شنیدن به استقبال اون رفتند و ایرج که از دیدن برادراش شاد شده بود اون دو رو در آغوش گرفت و به همراهشون به داخل خیمهگاه یا اون چادر سلطنتی که مخصوص پادشاهان بود رفت سلم و تور هم که تظاهر به این میکردند که بسیار از دیدن ایرج خوشحال شدند از حال پدرشون جویا شدند و ایرج جواب داد ای برادرا خیلی وقتی که شما به دیدار من و پدر نیومدین و پدر هم از کارها و رفتاری که شما در این اواخر انجام دادید مخصوصا از این لشکرکشیتون بسیار دلگیر شده بعد از این همه مدت دوری اینجوری اومدن و اون پیغام ناشایست و تهدیدآمیز فرستادنتون قلب پدرمون رو آزرده کرد شما که خوب میدونین من تشنه قدرت نیستم و حاضرم اگر پدرم دستور بده حکومت ایران رو به شما واگذار کنم چرا به خاطر مال دنیا که فانی و از دست رفتنی باید به جونه هم بیافتیم این کار شما این لشکرکشی اون نامه تهدیدآمیز به هیچ وجه کار درستی نبود سلم و تور پس از اینکه حرف‌های حرف های ایرج رو شنیدن نگاهی به همدیگه انداختند. سلم ساکت موند و تور شروع به صحبت کرد و گفت ببین بردر پدر همیشه بین تو و ما دوتا فرق میذاشت. به تو حکومت ایران رو بخشید که بهترین جای سرزمینش بود و ما دوتا رو فلستاد سراغ ترک ها و رومی ها. شما دوتا تو و پدر اصلا از حال ما خبر دارین این بخشش ناعادلانه روح ما رو هم آزرده کرده ما حق خودمونو میخوایم، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر ایرج تا نیمه های شب همچنان مشغول نصیحت کردن برادراش بود و سعی میکرد اونها رو متقاعد کنه که جنگ و خون ریزی راه حل این مسئله نیست. بالاخره شب از نیمه هم گذشت. ایرج به خیمه دیگری برای استراحت رفت و, سلم و تور تنها موندند. در اردوگاه سلموتور سکوت همه جا حاکم بود که ناگهان یکی از سپاهیان سرم اجازه ورود خواست. سلم رو به داخل چادر یا خیمه فرا خوند و سرباز وارد شد و پس از تعظیم و ادای احترام نظامی در گوش سلم چیزی رو زمزمه کرد و رفت سالم نفس عمیقی کشید و به فکر فرو رفت تور بهش گفت برا در مشکلی پیش اومده سلم رو به تور کرد و گفت سپاهیای ما تحت تأثیر چهره پل لبخند و مهربان ایرج قرار گرفتند و حالا که میدونن اون برای صلح و آشتی به اینجا اومده همه گی کار بزرگ اونا تحسین میکنن. حالا اون در بین سپاهیای ما به یه مرد محبوب و مورد علاقه تبدیل شده و این ماییم که داریم خار و ذلیل میشیم همه دارن از جوونمردی و معرفت و بزرگواری ایرج حرف میزنند و ما رو هیلهگرم مکار یا تماع میدونن. تو بگو برادر با یه همچین سپاهی میشه به ایران حمله کرد تور با حیرت گفت اون مثل یه جادوگر قدرتمند هنوز پا به اینجا نذاشته توجه همه رو به خودش جلب کرده به عقیده من او با نقشه قبلی و برای از بین بردن ما راهی اینجا شده و این ظاهرسازی ها و مهربانی نشون دادن ها هم بخشی از نقشه شیطانیشه. که اختیار عقل خودش رو به دست شیطان داده بود با جدی گفت آی برادر منم مطمئنم که حیله ای تو کاره اون میخواد با همراه کردن سپاهیان ما با خودش علیه ما دو نفر شورش کنه و ما را از بین ببره پس حواست باشه همین فردا صبح به محض اینکه وارد خیمه شد باید کارش رو تموم کنیم تمام شب سلم و طور به فکر نقشه کشتن ایرج بودند تا اینکه صبح از راه رسید و با طلوع خورشید ایرج رو به خیمگاه خودشون فراخوندند ایرج خوشقل خبر از همه جا با خوشحالی در حالی که فکر می‌کرد برادراش از حمله به ایران منصرف شدن وارد خیمه شد سلم و تور با دیدن ایرج با ظاهری خندون به پیشواز اون رفتند و خوشامد آمد گفتند ایرج خوشقلب در گوشه نشست و از برادراش پرسید که خوب برادر تصمیمتون چی شد سالم و تور دوباره همون حرفهای قبلی رو تکرار کردند و از حق و حقوق خودشون گفتند و به قول معروف از خرشیتون پایین نیومدند ایرج میخواست برای آخرین بار با اونها صحبت کنه و اونها رو نصیحت کنه که ناگهان سلم فریاد زد حرفای تو هیچ فایده ای برای ما نداره تور تو هم به حرفای اون گوش نکن اون قصد داره ما رو فریب بده و تنها به همین خاطر به اینجا اومده ایرش که از رفتارهای تند و ناپسند برادرش خسته شده بود از جا بلند شد که خیمه رو ترک کنه در همین موقع تور صندلی تلایی رو که روی اون نشسته بود به سمت ایراج پرت کرد. سلم هم با قرور فریاد کشید و تور رو تشویق کرد و بهش آفرین گفت. تور عبله هم تحت تأثیر قرار گرفت و بدون فکر دستش به سمت خنجری که دور کمرش بسته شده بود رفت و اون از غلاف بیرون کشید. ایراج با دیدن رفتارهای تور خواست خودش از چنگ اون نجات بده که در همون لحظه تور بهش حمله کرد و خنجر رو تا دسته در پهلوی اون فرو کرد. درد و سوزش جانکاهی به جان ایراج افتاد. چشماش سیاهی رفت و غرق در خون در برابر چشمهای انتقامجوی برادراش داد در همین لحظات که اونها داشتن نقشه شیطانیشون را عملی می‌کردند، در اون سوی دیگه در ایران زمین فریدون استراب عجیبی همه وجودش رو فرا گرفته بود اون با دلی پرا شوب در قصر به انتظار برگشتن ایرج قدم میزد و تمام شب هم چشم بر هم نگذاشته بود اما خبری از ایرج رسید. بالاخره فریدون تاب و طاقتش رو از دست داد از قصر بیرون رفت و آروم آروم خودش به بیرون شهر رسون و در مسیر اون جاده ای که ایرج اونجا رو ترک کرده بود چشم به راه پسرش چشم به بیابوندو مدتی گذشت تا اینکه بالاخره سواری از دور ظاهر شد سوار با خودش روی یک اسب دیگه تابوتی رو حمل می کرد فریدون با دیدن سوار به سمتش رفت و سراغ ایرج از اون گرفت و مرد سوار با چشمهای اشکبار در حالی که حرفی برای گفتن نداشت و بغض بهش امون صحبت کردن نمیداد با اشاره دست نگاه فریدون رو به سمت تابوت متوجه کرد فریدون با دستایی لرزون در حالی که قلبش داشت از سینه بیرون میزد، تابوت را باز کرد و جسم بی جون پسرش ایرج رو دید فریدون با قماندوه و درد فریاد کشید و اشک از چشماش جاری شد زانوهای هم یاری نکردند و اون روی خاک افتاد و به شیون و زاری پرداخت فریدون این لحظه ها رو پیشبینی کرده بود و می دونست که ایرج از این سفر به سلامت بر نمیگرده با حسرت و اندوه فراوون تابوت فرزند دلبندش رو تا شهر همراهی کرد مردم ایران که پادشاهی عادل و مهربان و خوش قلب مثل ایرج رو از دست داده بودند تا مدتها لباس سیاه برتن کردند و عزادار بودند هرکس کس مهاجرای کشته شدن ایرج به دست دو برادر دیو سیرتش رو میشنید با خشم و نفرت سلموتور رو نفرین میکرد که چنین ناجوان مردانه برادر خودشون رو به قطار رسوندم خب دوستان عزیز این قسمت از داستان پسران فریدون هم به پایان رسید ایرج کشته شد و سلم و تور دست به این جنایت حولناک زدند و حالا باید ببینیم که در شبهای آینده و در ادامه این داستان چه اتفاقاتی خواهد افتاد و این داستان و این ماجرا به کجا ختم میشه پس تا برنامه دیگر و قسمتی دیگر از داستان پسران فریدون که یکی از زیبا ترین و پنداموز ترین داستان شاهنامه است، همه شما رو به خدای مهربان می سپارن. تا درودی دیگر به